جن مخلوقی هست که برای هرکس نمی بینن اما بعضی از انسانها بدن اونها صلاحیت دارن صلاحیت حرمیان که فلانی قند داره بیگه بدنش صلاحیت داره بیگه چربی داره خود بدن تولید بی یا فلانی ارثی داره فلان چیزو به ارث می بعضی از بدنها صلاحیت جنگریفتگی هم دارن حر بدنی نه اون یک ایک بار جرم در وجودش میره اثر خودشو میذاره بدنشو مقاوم میکنه در سری که جرمیاز به بی این شکل زودتر ضربه میره زودتر این شکل متاثر میشه از دیگران پس اون که قبلا سابقه نداشته بدن مقاومتر نسب کسی سابقه دار باشه بعضی که بدنهای اونها سابقه رو میبینن یا کسانی که جن و روح دار مسلط میشه اینها رو مشاهده میکنن اما جن را به شکل اصلیش نمی بینند به شکل های تغییر داده شده وقتی که می بینن آیات کورسی خاند میشواد جن از آن محلی دور می شود و فرد فاضل می شود چطور بعضی مواقع از صندلیه هم احساس و علائم حضور جن مشاهده می شود خب این برای کسی است که اون جن در وجودش نیست اون در وجودش باشه باید کورسی فاصله بگیره اون که گاهی گاهی علائم میمانند اما خود چیز نیست اصلا کسی بیمار شده بعد بیماری بی آزمایش درست در اما علامت بیماری میماند خود اثر با وجود فر میکنه اثر شی با وجود شی حالا ردیپا مونده اما خود شاتلی پیدا نمیشه پاش اینجا هست پس این از گاهی گاهی اثرات میمانم اما با خود اعت قرسی گناه فرار میکنه اون بیرو باش در وجود باشه اون در وجودش هنوزم میمونه ایا کسی را جن بگیره چه الائمی داره در او ظاهر میگرده و ایا بخاندن آیت کورسی جن از دو دور شده و بدن او خارج میشود الائم مختلفی داره گایگاهی علامتهایی که الان نه ترسید الان همه خودتون الان آزمایش میکنید بابی که از علامتهایی ایلید که شانها سنگیل میشن شانها اولی علامتین شانها سنگیل میشن اوز شانها سنگین میشن جن گرفتگی بر اون میاد نکه همیشه از باید خستان سنگیر میشن حالا نترسید اما با جن باشی که علامتش این است گاگه پاها سنگیر میشن پاها و گاگه احساس در بدن چیز داره ماننده مثلا چیز وارد میشه احساس میکنه و باید احساس میکن جن داره با اونها مقاربت میکنه و خیلی همین چیز هم احساس کردن تو این هم میشود حالا جو بیرون کنید بهترین راه بیرون کردن جن در یک گوش آن از در گوش بیمار از آن بدهید در گوش بعدش اقامه اینها رو بگی از میرن کم کم بیرون و خوب میشه. اما چه توص که مش معبد از چه گردن کلفت بود دیگه روگه خیر خ تو باشه میره اما بعد دیگه استقامت میکن اونجا دیگه مقابله هم میکنن باید محکم بستید نهنترسید باید از او آ آیات رو قرائت می‌خوانید و رکوع آخر بقره رو می‌خوانید سوره طارق سوره رو می‌خوانید و بعض هم احب هستید تو انما خلعنا ابا توان نک لا ترجعون اینو بخونید جناه دیگه کم کم ظاهر میشن وقتی ظاهر شو علاماته دیوانه میشه قلم می‌زنید میپره بالا پای میفتین انگشتاش رو بگیری 60 شست دستش شست 65ش رو بگیری حالا نمیتونی بره بیرون، حالا گستن بله شد